درود رادیو راژیو در این زمان مهمتن این خبری مربوط به پناهندگان در هفته ای که گذشت رو به سم شما میرسونه مرکل بر تراش های ملی برای بازگشت دادن پناهشویان رد شده تاکید کرد انگرام مرکل صدر ازم آلمان که در میان شاقه جوانان حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان روز شنبه در شهر بادبرین سخن میگفت خواستار روی, روی دستگیری تلاش های مشترک در سطح ملی گردید او بیان داشت که این اقدام همه جانبه منظور اطمینان بخشی از بازگشت دادن مناسجویان که واجد شرایط پناهندگی در آلمان نمی شوند باید صورت گیرد. مرکر گفت بدون شک ما نیازمنده روی دستگیری تلاش های ملی برای بازگشت دادن پناهجویان هستیم که در آلمان پذیرفته نمی شوند حمایت مردمی از حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نسبت به سیاست مرکر در قبال پناهجویان روبه کاهش شده است. از سوی هم قرار دادن است که در سال آینده میلادی انتخابات سراسری نیز در آلمان رو اندازی شد. آنگرا مرکر بیان داشت که روند فرستادن پناهجویان راحت شده به کشورهایشان باید به گونه جدی به هرچه آجرته تماس بگیرد به گفته او این عمل به مردم اطمینان خواهد بخشید که دولت در قبال بی تفاوت نبوده و این موضوع به کونی جدی در نظر گرفته شده است. آژانس فرونتهکس اعلام کرد که برای بازگرداندن مهاجران به کشورهایشان آمادگی کامل دارد. اما این آژانس از عدم موجودیت سیاست واحد در این زمینه در میان دولت‌های عضو اتحادیه اروپا انتقاد کرد. رئیس آژانس هماهنگ کننده همکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا فرونتکس برای حفاظت از مرزهای بیرونی این اتحادیه از کشورهای عضو اتحادیه خاص که مهاجران بیشتری را که قابلیت حفاظت و دریافت پناهندگی ندارند به کشورهایشان بازگرداند. فابریس لنگری رئیس فرانتکس روز چهارشنبه اعلام کرد که فقط چهل درصد از افرادی که واجد شرایط دریافت پناهندگی نیستند دوباره به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. در حالی که اکثر پناهجویانی که به ایتالیا میآیند به دنبال به دست آوردن کار هستند. لگری گفت: اکثر پناهجویانی که به ایتالیا وارد می از کشورهایی چون لیبریا، لیبی و مصر میآند و ممکن است، بازگردان نشود و باید اخراج گردند به افزود که حکومت در روم می روند بازگشت این مهاجران را شتاب بخشد و ما حالا اخراج از ایتالیا به کشورهای سوم در خارج از اتحاد تقویت می بخشیم. رئیس فرونتکس همچنین گفت که این سازمان در حال حاضر بودجه کافی را برای پیشبرد برد روند بازگشت مهاجران به کشورهای مبداشان را دارد و اضافه کرد ما پوچه در اختیار داریم اما منتظر تصمیم ملی در نزمینه بازگرداندن مهاجران می باشیم مهاجران افغان در اروپا در میان آن دسته از پناهجویانی قرار دارند که بخشی از آنها واجد شرایط دریافت حفاظت شخصی و پناهندگی در اروپا شناخته نمی شوند و بر اساس موافقت نام موافق نامی اخیر اتاد اروپا با دولت افغانستان در بروکسل باید روند بازگرداندنشان شدت یابد. یک پناهجوی افغان با بلعیدن تیغ خودتراش مانع از اخراج خود آنوار شد. یک پناهجوی 21 ساله افغان که به گونه اجبار همراه یک زن و مرد و کودک دیگر از کشور دانمارک به افغانستان اخراج شده بود با بلعیدن تیغ خودتراش و جراحاتی که از طرف خودش و پلیس در جریان اخراج و بازداشتش به او وارد شده بود از طرف مسئولین میدان هوایی کابل پذیرفته نشده و مجددا به دانمارک مستدر شده است این پناهجو و از سه نفر دیگر به طور اجباری از دانمارک به افغانستان فرستاده شده بودند که پسر پناهجو با مقاومت و خودزنی و همچنین فریاد زدن اینکه من یک بید بیدین هستم در فرودگاه کابل توانست خود را به دانمارک واظ قرار افغان هایی که جواب منفی دریافت کردند به کشورشان دیپورت می شوند به زودی تمام افغان هایی که به کشورهای اروپایی برای پناهنده شدن آمده و جواب منفی دریافت کردند به افغانستان دیپورت خواهند شد بر طبق توافقی که بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا صورت گرفته از زمان امضای توافق ظرف ظرف ماه تمامی افغان های مقیم در کمپ های پناهندگی به صورت روزانه با پروازهای چارتر به کابل فرستاده می شوند و در صورتی که به صورت داوطلبانه برنگردند، توسط پولیس های کشور مربوط دستگیر شوند می شوند و هر پرواز حداکثر تا 50 نفر از افراد غیر داوطلب تحت نظر معمورین امنیتی و پلیس برگردان میشوند. دولت افغانستان در صورتی که این قرارداد را امضا کرد تمام کمکهای نقدی کشورهای اروپایی را از دست است. میداد. قرار است در بخشی از فرودگاه کابل این افراد به صورت کنترل شده از پرواز خارج شده و سپس به پلیس افغانستان تحویل داده شوند. پیش از این کشور نروژ به طور خاص کار دیپورت این افراد را حتی اگر زن و یا زیر سن بودن را انجام میداده. که از این به بعد سایر کشورها نیز شروع به دیپورت تمامی کسانی که جواب منوی از دولت‌های اروپایی را گرفتن خواهند کرد. در خبر آمده اگر این افراد به صورت داوطلبانه به کشورشان برگردانده نشوند از کمک و حمایت کشور میزبان برخوردار خواهند شد این در حالی است که در سال گذشته 44300 نفر از دانمارک اخراج شدند بر طبق آمار سازمان مهاجرت دانمارک در سال گذشته 44300 نفر از دانمارک اخراج شدند از بین این تعداد 2778 نفر آنها بعد از رسیدگی به کیس پناهندگیشان از از سازمان امور مهاجرت جواب محفی دریافت کردند و از دانمارک اخراج شدند و 1520 نفر از آنها به خاطر ارتکاب جرم از دادگاه حکم اخراج دریافت کردند. این در حالی است که در سال 2010 تنها 770 نفر از دانمارک اخراج شده بودند. حدود 800 حمله به های پناه پناهجویان در آلمان در سال 2016. به گفته اداره آگاهی آلمان از آغاز سال 2016 تا کنون حدود 800 حمله به اقامتگاه پناهجوهان در این کشور صورت گرفته است اغلب این حملات از سوی گروه های دست راستی یا افرادی صورت گرفته که انگیزه های خارجی داشتند. در گزارش اداره آگاهی آلمان پلیس جنایی فدرال (BKA) آمده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 797 مورد از حمله به اقامتگاه های ثبت شده است دولت آلمان در سال 2015 میلادی بیش از 800 هزار پناهجو را به کشور خود راه داده در حالی که در آغاز سال 2015 سیاست دولت آلمان با مهمان نوازی مردم این کشور از پناهجو همراه بود به تدریج با سرآوردن مشکلات فضای یاری به پناهجویان نیز تغییر کرد و مخالفت ها آشکارتر و خارجی ستیزی ابعاد خشونت آمیزتری پیدا کرد به گفته مقامات امنیتی آلمان 740 مورد از این حملات در سال 2016 میلادی از سور گروه های دست راسی یا توسط افرادی که انگیزه های ضد خارجی داشتند صورت گرفته است. به گفته پلیس آلمان انگیزه مهاجمان در 57 مورد دیگر هنوز مشخص نشده است. در این گزارش آمده است که 320 مورد به تخریب ساختمان ها یا وسایل پناهجویانه منجر شده که در 180 حمله گروه های دست راسی و افراد خارجی ستیز دست به پخش اعلامی علیه پنازجون زدن در 138 هفت حمله نیز مهاجران دست به خشونت آشکار علیه پنازجون زدن در سال جاری میلادی 61 بار اقامتگاه های پنازجون به آتش کشیده شدند در برخی موارد مهاجمان حتی از از مواد منفجره نیز در درون اقامتگاه ها استفاده کردند در مقایسه با سال گذشته حمله به پنازجون در آلمان به شدت افزایش یافته است. در سال 2014 میلادی 199 حمله به اقامتگاه پراجوان ثبت شده و در سال 2013 شمار حملات تنها به 69 مورد میرسید. لا خندون خاندون، دلاتون شاد، تندرستیتون پایدار و سفرهاتون پرنم شاد باشید.